از ما موریاد رو می‌خوایم رو مرکب. که خلاصه‌ای از این مطلب رو در میون داریم واسمون مرکب. از قرائچه بو. و منها ال من مرکب، چیزیسته. من ال مبنی واته ال مرکب. با خوبا مرذ که با خوبا اینون اسمی است که چیزی است که این مرکب چیزی است که رو شدن لفظ این مرکب شده از دو لفظ. نمیگه دو اسم نمیگه یه اسم و یه پیل دو لفظ حالا ممکنه یکیش اسم باشه یکیش حرف باشه مثلا سی و وی سی و وی ویش حرفه آه. سی ویش اسم ممکنه هر دوتا اسم باشه مثل به حلبنگ ممکنه یکیش اسم بوده یکیش فیل بوده مثل اگرامو یا تحفت شدها و, و همساله شد. لذا میگه چی من نفسه لئیسه بینه همه نسبتون قیدش اینه که بین هیچ هیچکونه نسبتی نیست لئیسه بینه همه نسبتون نکره از سیاه نفتیه قموم یعنی هیچکونه نسبتی بینشون نیست نه نسبت اضافی نه نسبت اسنادی، نه نسبت وصفی هیچ کونه اسنادی نسبتی بین اینها وجود ندارد. از توان بیوانه خب. این میشه تحریف مرکب حالا مرکب رو تقسیم بکنیم فرعین تزم من از ثانی حرف هم. اگر دومی در ضمن خودش گرفته حرفی را آه یا حرفی اون وسط بوده اون در زمین خودش گرفته پشت بگم مرکبه چی؟ تزنبونی بنیا هر دو جزش مفلی میشه. هر دو جزش میشن چی؟ مفلی جز اولش مفلی میشه چرا؟ وسط این کلام جز دوبان مفلی میشه تو خاطرین که دربن گرفته معنای هر اون که وسط کلامه چون اعراب در وسط کلام نمیاد اعراب اصل و یچلب و قوره آمل فی آخره بی کرده نه فی وسطه بی بنابراین، بنا اونم که در آخری هم دومی هم مبنی میشه به خاطر که در بند گرفت معنای هر. خب حالا اصل در بنا سکرین اینا چرا مبنی در حرکه شده گفتیم بناه بر سکرین رو اینجا ندادیم بناه بر حرکه رو گذاشتیم تا اینکه چی بفهمونیم این بنایشون بنای آریزی است بنای اصلی نیست. بعد خب حالا بنای آریزی خاصی بفهمونیم وقتی بر حرکت کردیم چرا حرکت فتحه میدید چرا کسره یا زمین میدید جواب میدیم که چی چون فتحه اخصه حرکت این سه تا سوالو برداشتوشون پس اولا چه شد این که هر دو شدن علت به رو کن. بعد گفتیم چرا مقلی برد حرکه شدن و سکون نشدن خلاف ازخار رو باید سوال کردیه بعد پسیدیم چرا مقلی برد؟, برد شدن و غیر فت اونم باز جا بنیان چه خمسطه اشره که بوده خمسطون و اشره رو میگه ها خمسطه اشره همه این موازی البته خمسته اشرت و اخوا تهیمان. و اخوا تهیمان اخوا تهیمان چیه؟ از یازده تا نوزده یازده تا نوزده البته دوازدهش جوزه افرش چیه؟ مونده ها اصنا اشاره و اصنا هشره به خاطر شبه اضافه چون نونش افتاده دیگه آدم خیال میکنه که اضافه شده و ثانیه اضافه معارضه داره با چی؟ با بینا پس بنابرای دیگه بینا در جز اول مورمشه اما اعداد دومی اخبات دومی کنونه حادی اشر حادی اشر یه چی؟ یعنی یازده اعداد دو اسم که اعداد شمارشی یک دو سه چار پن شیش هم تا بینا های هم اعداد ترتیبی یعنی اعداد که رتبه رو ما اینگه میکنه یکم دوم سوم چهارم پنجم ها الان ما یه خامس داریم خامس یعنی چی؟ پنجم یه خمس داریم یعنی چی؟ پنج ها مثل پارسی و باده بود میگه سلامه حادی عشر عداد ترتیگی هستن ها حواد شمارشی بیستن لذا اخوات اون هم هست یازده تا نوزده حادی عشره سانی عشره امام سانی عشر درست شد سانی عشره سال سه تا تا سه تا دونزده. دونزده تا در اعداد پرتیبی عدد دوازده هم با سیه اونجا تو میکنید یا نه چیزی نبوده که بیفته همون حالته بگی. ترکیبی رو دارد. پس ما در باقی از یازده تا نوزده میشه, تا... میشه چند تا 9 تا از یازده تا از یازده هم تا نوزده هم میشه تا نه تا از این نه تا یو تا چیه هر دو جزدش فقط یکیش هستش که چیه جزرورش مانده اون کدومه؟ شده حادی و اخلا الا اثنه اشرت و فرعی میگه همه اینها مبنی میشن الا اثنه اشرت مگر کلمه اثنه اشرت و فرعی گفر اثنه اشرت کنمه اثنتا اشرتت اثنتا اشرتت و سهن تا که در حالت رفتی اینطوره در حالت نسبی جدیب و از و سمیتایی میشه ازل اولومنها ازل اولومنها معربون علن مختار میگید چرا اینو استثناء کردید؟ از رو بشنید از تعلیمیه ازی که علت رو بیان میکنه ازل تعلیمیه میگه ازل اولومنها زیرا اول یعنی لفظ اول منها از این کلمه اسناحشن زیرا لفظ اول از این کلمه اسناحشن معرب و نرم مختار معرب است بنابرای آنچه که ما اختیار کردیم علم مختار یعنی علام مختاری بنابرای آنچه که من اختیار کردم من آهی شیخ بها و اختیار شده بیش نهاد قوید اینه که این معربه است به دلیل همین شبه اضافه در توزه و ادلا این و ادلای چی؟ ادلای مرکبه است این گفت و از من از حرف است. این شرطیه رو ببینیم همشه ای ادلای مرکب نقیز اون این شرطیه و این من از ثانی بنیا درسته هر دو جز محبی میشه حالا و اطلاع یعنی چی؟ و این لن یک تزن من از سانی اگر ثانی حرفی رو در برد و اگر همین طوری به هم چسبیدن. و ایلا او آره و از ثانی میشه چی؟ محرفی جوزه اول وسط یک کلمه است میشه مبنی مبنی و لحکه میشه چون به بناش آرسیه مبنی و لحکه هم میشه چون فتح قفره است قوصه دو سوال در جوزه اول است اما جوزه دوبه دلیلی برای بناش بگیر نداریم این تونیم بگیم در برگرد من حرف ها ایچ دلیلی نداریم لذا جوزه دوبه میشه چی؟ مورد ولی اعرابش چه نوع اعرابی میشه؟ اعراب مالای انسره اعراب غیرمانسره چرا؟ چون الان به البرک هرکی یکی هست اسباقشه و سبب دیگهش علمیت ها سبب دیگش چیه؟ علمیت تهنیز هم داره که دیگه وقتی دوتا سبب هست این تهنیز سبب سیگه هم حساب نیشه که به البرک لذا الان به البرک رو میگیم هازهی به البرک استو شهر ایستن بکنه انزی با علا بگو، انزی با علا بگو. رأیتو با علا مررتو به با علا بگش. جوز افراد مبی جوز دو بومورده را به خب کوج جزء اولش مبنی جزء دوم مورد اعراب بالای سره میگه ان لم یکون قبل از ترکیب مبنی یا شرطش اینه ان لم یکون اون جزء ثانی اون ثانی قبل از ترکیب قبل از ترکیب چی مبنی. به شرطی که اون جزء دوم قبل از ترکیب مبنی رگی نباشه ولی بله جزه دومش دقامش چی باشه؟ حرف باشه یا صوت باشه که خوندیم که اسم اصفاد و حروف چی هم؟ مبنی هم اگه قبل از تحکیب مبنی بوده بیگه ما نمیتونیم معاردش بکنیم که چیزی که مبنی به ذاته بیگه معارد به شا نیست از بنابرایی چی اون رو باید به همون شکل مبنی کنیم که سیبه ویه اما سیبهش مثل به علبه. مثل به علست برواسلی کلام واقع شده شده مقنی ویهش هم مثل بکه اما بک اسم بکه یعنی کوبی بک مسترشه یعنی کوبیدن آه اما بی اسم صوته نسا حرف از تو مبنی اگر چسبیده به سی و به سیب در واقع این چیز رو حرف نمیکنه سی و ویه مبنی چرا چون قبل از این که بیاد مرکب بشه جوز دومش مبنی در واقع جوز اول به خاطر وزدی کلام مبنی شده جوز دوم هم از اول مبنی بود ترکیب همین وسط کاری برای اینها صورت شد پس برماری سی و بید میشه مبنی حالا چجور مبنی میشه سی و بید مبنی بر کسته مبنی بر کسته مشخصه مبنی بر سی و تمام شد این انبال مرکبه حالا از اینجا به بر شروع میشه بحث توابه که لزوم داره این بحث توابه رو شما خوب کار کنید توابه که میدونید کنو ماست دیگه ند سفر عطف بیان بدل تحکیل عطف با خودی درست شد؟ این توابع لازمه که اونجا خوندید تو نینایه هرچقدرش به قول محروف خواستید یاد بگیرید راه یاد گرفتن این کتاب اونه که این کتاب ها رو به هم ببیند یعنی اگر شما میخواید خوب یاد بگیرید بحث نده رو که خوندید با که اینا سینا دیوادی هدایچ کنید با هم بخونید و مقایسه کنید و مبارزه کنید. یه سری چیز اونجا هست، اونجا نیست. یه سری اونجا هست، اونجا نیست. اینها رو به هم استفاده بدید تا اینکه بتونید تفاوت بین این موارد رو و در این خصوص مساوات این ها بتونید تحقق کنید. خودتون رو از ارزانچی که نمی‌خونید ندونید. فکر نکنید حالا صفحه کتاب نه، مش توابع که تو واقعا میشه انسان زیبین رسید. باید بر تمرین و بشه، تمرین بشه تا تو ذهن انسان نقش بدن. از توابع، حالا توابع رو اول معنا می‌کنیم. میگه کل و فرع حال بالا به بنویسید کل و صان. چون اصل و فرع، اول و از بعضی میگن کل و صان تو کتاب ادای داشتیم کل و صان، هر کلمه دو قسمه. میگه هر فرقی یعنی هر چیزی که آمل بر او به طور مستقیم نرفته اصل نیست بلکه چیه فرقی یعنی آمل فرعن رفته روون اصلا هر فرعن او اره و به اعراب سابقی هر فرقی یعنی هر اسم دومی که اعرابش به مانند اعراب چیه سابقی او اورعب به اعراب سابقه شد. اعراب داده شده به اعراب چی سابقه اینو بهش میگن چی رو بهش میگن به تابع او اورعب به اعراب, اعراب, اعراب سابقه البته باید از یه جهتم باشه دیگه این تعریف ممکن بود مثلا فرض کنید که مبتدا خبر با هم شامل بشیم چون مبتدا خبر میگیم که خبر رسوی کلو برعه کلو کل اهره و به اعراب سابقه ده و خبر هم به اعراب سابقه داشته ادامه کنیشه اون مرخوب اینم مرخوب اما از یه جهت اولی از جهت مختلف بودن مرخوب شده دومی از جهت خبر بودن آه. ولی در صفت و بدن و مبدلون به ها از یه جهت یعنی یه رونا که اومده هر دو رو چکای کرده رفت دیگه که رو اولا و اصلا یکی رو درمان و فره هست فر این اعره و بهراب سابقه البته با کلمه فر امکان داره که خبر رو بگیم فر بیرون اعره و به سابقه ونگه خمسه تا و این چند تاست؟ هشت خمسه تا على افضل عنها اولي صفته نعم على افضل عنها بعضه مودل له معنى في مطبوعه اون يجوز الارت میکنه بر معنایی در مطبوعش مشخصه مشخصه یعنی لالت میکنه بر یک معنایی در مطبوع مطلق یعنی همیشه یعنی هر کجا صفت بیاد دلالت بر معنایی در مفعول خودش داره یعنی وقتی شما میگید زید زیدون الاله ما بلدی زید اله پسر من ده شما زیدون مبتدا الاله صفتش این الاله دلالت بر چی می‌کنه معنای در زیدون معنای در زید چیه علم و دانش صفت میان همیشه دلالت بر معنا و مفهومی در موضوع خودش میکنه نیست تو در هم آب خونک این خونک صفت دیگه برای آب میاد و دلالت برای یک معنا در موضوع به خودش میکنه که آب باشه یعنی سردستگر اند و خوبه با لعلا من اندیمت بوی هی منبوت هی یعنی همیشه ولی اغلب ها اشتقاق اغلب یعنی 90 درصده سفت ها مشتقه تو وصف دیگه آه معنه دارن معنه ها رو بخواد در مفهوم ایجاد کنیم و و مفهوم در مفهوم رو معنا و مفهومی رو بخواد در محتضا بیاره در اسم قبل خودش بیاره باید چی باشه؟ مشتقه باشه آه جامعه که از این اغلب ها اشتغال هم بگی سفتگاه این اوقات هم اونهایی که جامل معمولا تحویل به مشتمل معمولاً به مثل اینکه بگیم زید آمد, آمد. زیدون از ثعلب و جواهر و خب زید روبا آمد این روبا منده نیست که زید با هلی این باشه غلطه چرا چون زید انسانه یه جنس فصل داره روبا حیوانه یک جنس و فصل دیگه داره اصلا با هم که قابل تطبیق نیست نه کلامشو ضرر یا بگیم زید خر آمد زیدون علی حمار و بازم قلعه مثل ما همیچ رفتید نه منی این همار و سهلوی که اینجا به کار رفته در معنای اصلی خودش بگید نیست منظور از زیدون الهمار یعنی چی؟ یعنی زیدون اله آه و منظور از زیدون از یعنی چی؟ یعنی زیدون الخادر المکار آه اینه منظور لذا معمولا جایی که جامعه هم هست ترمیل به چی میره؟ اغلب و اشتباه بود حالا صفت یادتون باشه گفتیم که یا صفت به حال محصوبه یا صفت به حال متعلق محصوبه صفت یا صفت است به حال موصوف یا صفت است. و به حال متعلق موصوب آمین این صفت ما خودش صفت حقیدی رو صفت به حال موصوب رو گفتیم در چهار تا چیز از ده تا چیز از موصوب خودش چهار میکنه اما صفت به حال متعلق موصوب رو گفتیم در اعراق و در تحریف و با ما قبل خودش یعنی محصوب خود رو میکنه در افراد و تصمیه و جمع و تذکیر و تنیز با چی محصوب میکنه با مابه های خودش محصوب رو تابقت میکنه که فائلش چون لذا میگه چی؟ و قبعه مابه های محصوبی و یتبعه ها پس بنابراین تبعیت میکنه از محصوب خودش احرابن که این ستا میشه در نصب تعریفن و تنکیرن افرادن و دثنیتن و جمعن و تذکیرن و تنمیزن یعنی از این ده دهتا چیست در چهار تا چیستر در او به حال متعلقی یا صفت به حال متعلق ممتوب یعنی صفت به حال متعلق ممتوب متعلق ممتوب اسمی است که دارای زمیر موصوب و به خاطر همین بهش چیه متعلق موصوب میگرد یعنی چیزی که تعلقی به موصوب ما دارد ارتباطی علاقهی به موصوب ما داره. او به حال متعلقی خب این به حال متعلقی هی در چی تباییت میکنه؟ او دو تا رو با این بر دو تا رو با و یدوه او به سراسته لقوال و یکبه رو و تقریبیت می کنه خودش رو در ستای اولی جمع اول جمع اولی در ستای اول یعنی اعراب یکیش رو مطابقه کنید و بعد هم بعد از اول ستای اول که نوشته میشه 5 تا اعرابش تا بعد گفتش چی؟ تعریف و تنگیر یعنی در تعریف و تنگیر یکیش در اعراب هم یکی مطابقت میکنه اما بر وواغی اما در بقیه یعنی پنج تا بعد که مذکر و تسنی و جمع تذکیر و تانیث باشه در این تا چند حالت داره در این پنج تا رو من به خلاصه گفتم گفتم چی گفتم اگر صفر جوازه متحدثه در این پنج از چی مطابقت میکنه با رفت به موافق کنید دیگه رفتی به ماقف حالا و اما فرده ما فا این رفت از زمیر المعصوب فا موافق و نعیزن. اگر باز رفت داده زمیر المعصوب رو زمیر المعصوب رو رفت داده فا موافق و نعیز باز موافق هست باز موافق هست نو جا اندید امره کریم و کل ام کریم و کل ببینید این الان از یک جهت از یک جهت صفت به حال محصوله از یک جهت صفت به حال محصول نیست خوبش کنید این از اون قسم حسنالوچقه ها اما صفت مشبههی که خوندی. حسن الله از دروس میگه این دشده کلمتون عزم. این مثال رو بنویسید بالایی تیکه یه جزبه تون بدم مثال رو هم بکنید جاعت میگه بهتر جاعت نسته نیست که اگر محمدت حروری بود و فاصله اجازه لا شد بهتره که با تا بیاد تا بدونه جاعتی امرأتون کریمتون عبد این مثال در اصل این مثال در اصل چنین بوده است این مثال در اصل چنین بوده است جاعت می امرأتون امرأتون کریمون ابوها کریمون ابوها وست به حال متعلق مفتوف بوده است. و صفت به حال متعلقه موصوف بوده است و همانطور چه پیداست در اعراب و تحریب و تنجیب مطابق با ما و در تذکیر و و در تذکیر و تحنیز و افراد و تصمی و جمع و افراد و تصمی و جمع مطابق با مابرد مطابق با مابرد یعنی فائلش اقوها می باشد درسته؟ همانطور که در دا... همانطور که در صفت مشبهه دانستی و همانطور که در صفت مشبهه چیه دانستی که میشود زمیر معمول صفت مشبهه را که میشوند زمیر صفت مشبهه را برداشته و آن را در صفت مشبهه مستدر نمونده و به جای آن زمیر و به جای آن زمیر علی فلام بر سر معمول صفت مشبه در آوری علف و بر سر معمول صفت مشبه در آوری و بعد به خاطر تخدیب و بعد به خاطر تخدیب صفت مشبه را به سوی این معمول معرفت علف به این معمول معرفت دهن فلا اضافه نماییم اضافه نماییم ما چ کردیم زمیر ابوها را در کریم مستطر نمودیم زمیر ابوها را در کریم مستطر نمودیم کریمتون شد کریمتون داخل برمسیه دیدیت شد و بعد الافلام به عب دادیم العب شد و بعد کریمه را به العب و چون این اضافه و چون این اضافه اضافه صفت مشبهه است اضافه صفت مشبهه است به معمول خودش به معمول خودش یعنی شبیه به مفعول یعنی شبیه به مفعول چسب تعریب نمی کند نزاق چسب تحریف نمی کند لذا کریمت العب می صفت امرهتون باشد لذا کریمت العب می تواند صفت امرهتون باشد. باشد ها ها اگر به این بساند به عقلش نگاه کنید که جا عطی امراتون که جا عطی امراتون چریمون ابوها بود چریمون ابوها بود سفاد به حال متعلق موسیف. سفر و حال متعاده نمشود یعنی سببی سفر و حال متعاده منصوبات یعنی سبب و اگر و اگر نظر به زمان اضافه شدن او کنیم و اگر نظر به زمان اضافه شدن او کنیم مرحله دومه صفت به حال موصوف به حسابا لذا می, بایست. می بایست با موصوف تان با به در چهار چیز از اون ده چیز مطابقت نمایان یه جزوی کامل شده این بحث رو مختلفاً پی برانمون. شد؟ خب حالا نگاه کنید. میگه جاعتی امراتن کریمت الکرب. الان داره کلیفۃ الکرب این چهار تا از ده تا متواابقن می‌کنه. انگار شده صفت به حال. جاعتی غجلان کریم ما کریما کریم ما العبه باز هم داره متواابقت. رجالان کرامون اده کرام, و... کرام جمع مطابق. مطابقه درست شد؟ حالا اون تمرین اول رو من برای از اون اصل مشخص کردم تندرین دو پن رجلان کریما الاغه قبل از اضافه چی بوده؟ این اون زمانی که به حال متعلق مصوب بوده هستش چی بوده؟ جا انی رجلانه کریمون ابوه ما یا ابوا عمره دو تا درست تو به من میشه چی سر خون تامین پدر جانون جا اندجالون با کریمون ابا پدر ما ابا یا ابو خون درست پس بنابراین اون که اینجا شیخ عنوان کرد و این رفع زمیر المعصوب و موافقون عیزن یعنی میشه مثل صورت نتحقی یعنی در واقع چیز جدیدی نگفت ما یه سفت به حال متعلق و محصوبه اولی و با دوم دوبان به حال محصوبه و ایلا کم فکر کم فیر یک نکته رو تو کتاب همین کتاب خودمون خوندیم که برای فردا لازم داریم که کجاها ما تای تنیز به فرم و رفت می که اشارات اشارت مایی این برای درست فردای ما لازمه تا نرشونه